عزیزان، آیا می دونستین راهی هست که بشه کتاب مقدس رو درست کرد و اون رو در زندگی به کار گرفت؟ بیایید رو راست باشیم. بسیاری از ما این تجربه رو داریم که کلام خدا رو به سر ما کوبیدن و سعی کردن اون رو به زور توی حلق ما بکنن و یا احساس کردیم که اون رو محکم توی صورت ما کوبیدن. فقط به خاطر اینکه کسی احساس کرده که این راهیه که باید کتاب مقدس رو در شریعت و زندگی های ما کار بگیره سلام و به درس امروز معزه سرکوه خوش اومدین در درس امروز معلم ما بهترین راهه به کارگیری کلام خدا رو به ما نشون خواهد داد راه ایسا شما نور جهان هستید نمیتوان شهری را که بر کوهی بنا شده از پنهان کرد هیچ کس چراغ را روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد. تا به تمام ساکنان خانه نور دهد نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ نمایم نیامدم تا منسوخ کنم بلکه تا به کمال برسانم یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهند رفت تا همه آن تحقق یابد پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی پسترین فرد محسوب خواهد شد حال آنکه هر شریعت را رعایت کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد بدانید که تا نیکی شما از نیکی ملایان یهود و فریسیان بیشتر نباشد به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد کسی گفته روانشناسی که عیسی را کنار می‌گذارد وقتی مطالعه می کنید مثل گشتن دنبال یک بستر سیاه در اتاق تاریکه و فلسفه ای که بر مسیح متمرکز نیست مثل گشتن دنبال بستر سیاه در اتاق تاریکی هست که اصلاً اونجا وجود نداره. عرفان مثل گشتن دنبال یک بستر سیاه در اتاق تاریکی هست که اونجا وجود نداره و فریاد می‌زنند یافتیم. یافتیم. ایسا اینجا در بالای کوه از آیه 14 باب پنج شروع میکنه و میگه اگه شما یکی از شاگردان من هستید و در مسائل پادشاهی تعلیم دیدید مثل کسی نیستید که در اتاق تاریک دنبال بستر سیاهی می گرده که اونجا وجود نداره و فریاد میزنه یافتم. نه شما نور جهان هستید. شما مانند چراغی هستید که به لحاظ استراتژی بالای بنا شده که نمی اون رو پنهان کرد. مانند چراغی هستید که روشن شده و به طور سوغلجیشی روی چراغدان قرار گرفته که بتونه روشنایی بده. شما باید اجازه بدید نورتان چنان بر مردم اطرافتون بتابه که کارهای خوبی رو که می کنید ببینن و بعد پدر شما رو که در آسمان است و منبع همه این چیزهاست که در زندگی شما اتفاق میافته تمجید نمایند. او کسیه که زندگی شما رو بلند میکنه چراغ شما رو روشن میکنه و شما را در اون چراغدان قرار میده و وقتی اجازه میدید نورتان بتابه مردم رو متوجه پدر آسمانیتون میکنید شاگرد ایسای مسیح به دلایل متعددی نور جهان هست. اولا او نور جهانه چون با کسی رابطه داره که نور جهان هست. عیسی در اناجید میگوید من نور جهان هستم و مانند این شاگردان ایسای مسیح چون من و شما هم امروز در رابطه حیاتی با او هستیم بنابراین از این نظر ما نیز نور جهان هستیم این شاگردان نور جهان بودند و امروز هم باید شاگردان مسیح نور جهان باشند چون اونها و ما از او تعلیم یافتیم. آنها در کلام او ماندن و به شناختی حقیقی نائل شدند که آنها را آزاد کرد بعد اونها توانستند دیگران را به همین حقیقت هدایت کنند از آیه 17 تا 20 دلیل دیگری هست که چرا شاگردان مسیح نور جهانند به این دلیل که او حق دارد کلام خدا را درک کند در اوقات 17 هم تا بیستم عیسی با این شاگردان که بر سر کوه با او همراه هستند صحبت میکنه چون اونها میخواند که بخشی از راه حل و بخشی از جواب مشکلات مردمی باشن که پایین کوه هستند او داره با اونها میگه به پایین کوه نگاه کنید همه اون مردم رو با تمام مشکلاتشون می بینید یکی از دلایلی که چرا اونها این همه مشکل داشتن این بود که اونها مانند گوسفندانی بودند که شبانی نداشتند اونها دست راستشون را از دست چپشون تشخیص نمیدادند. اونها نمیدونستند اونها نوری ندارن. حالا یکی از راهایی که شما باید نور جهان برای اونها باشید، اینه که باید به با اونها روش شایسته استفاده از کلام خدا رو یاد برید. وقتی عیسی این رو در مورد کتاب مقدس می میگفت که منظورش همون کتاب شریعت و انبیا بود، در واقع چیزهای متعددی می میگفت. اولا اون داش میگفت قبل از اینکه برید پایین و کلام خدا رو یا شریعت خدا رو در زندگی مردم به کار بگیرید، باید شریعت خدا را از منشور محبت خدا عبور بدید و بعد از اون شریعت خدا رو در زندگی دیگران به کار بگیرید. چون تمامی شریعت خدا از قلب محبت خدا برای انسان نشعت میگیره. شما نیاز دارید که کاربرد شایسته و مناسب کلام خدا رو درک کنید. بعد او رهبران مذهبی رو همینجا به چالش میکشید. وقتی او درباره رویکردش روی کردش به شریعت و انبیا صحبت می کرد، در این پاراگراف آیات 17 تا 20 گفته هر چیزی که به شما تعلیم می دهم و هر چیزی که به شما تعلیم خواهم داد قطعا در توافق با شریعت و انبیا هست. اگر شما روی مرا نسبت به کتاب مقدس درک کنید، حتی یک نقطه و کوچکترین حرفی از شریعت و انبیا انجام نشده نخواهد ماند. من نیامدم که چیزی از کتاب مقدس کم کنم. شما خواهید فهمید که هر چیزی که من تعلیم می‌دهم تماماً در توافق با کتاب مقدس هست. اما در این حال او چیز دیگری میگه که این کلید بقیه باب پنج هست. او میگه اما چیزی که من به شما تعلیم میدم در توافق با معلمین شریعت، کاتبین و فریسیان نیست او اینجا رهبران مذهبی رو به چالش میکشه و شاگردانش رو برای این واقعیت آماده میکنه که رهبران مذهبی واکنش دوستانه به اونها نخواهند داد چون او داره میگه چیزی که من به شما تعلیم میدم در توافق با تعالیم اونها نیست ما همینطور در آیه 20 میبینیم که او چیز بسیار مهمی در رابطه با پارسایی شخصی شاگردانش بیان میکنه او گفته وقتی شما بفهمید من چه تعلیمی میدهم و وقتی روی کرده مرا به کتاب مقدس درک کنید پارسایی شما بسیار بالاتر از پارسایی این کاتبان و فریسیان خواهد بود ما دلایل این رو در درس قبلیمون دیدیم پارسایی رهبران مذهبی ریاکارانه بود. پارسایی شاگردان او باید حقیقی باشه. پارسایی کاتبین و فریسیان ظاهری بود. اما پارسایی شاگردان عیسی باید درونی می بود. پارسایی رهبران مذهبی افقی بود. اون فقط برای ظاهر مسائل بود. اونها این کار رو می کردن تا در مقابل مردم مذهبی جلوه بکنن. اون مثل یک نمایش بود که به خاطر منافع انسان به اجرا گذاشته می اون مردان ممکن بود که ببینن اونها هدیه میدن یا دعا میکنن و فکر میکردند که اونها سخاوتمند و پارسا هستند اما او میگه ادالت شما مانند آنها افقی نخواهد بود بلکه پارسایی شما عمودی و رو به خدا خواهد بود وقتی درک کنید عیسی در این پاراگراف آیات 17 تا 20 درباره کتاب مقدس چی میگه دلیل دیگری رو خواهید فهمید که چرا او با رهبران مذهبی اختلاف داشت او داره میگه اگه شما منو درک کنید پارسایی شما روحانی خواهد بود در حالی که پارسایی اونها به طور گستردهی سنتی هست اون واقعا بر مبنای کتاب مقدس نیست دست کم درک شایسته ای از کتاب مقدس نیست من معتقدم که اون ما رو به بقیه باب پنج جامیده میده که به عنوان مشکل ترین بخش از موعظه سر کوه ملاحظه شده از ابتدای آیه 21 تا به آیه 41 شش پاراگراف وجود داره هر کدوم از این پاراگراف ها با چنین عبارتی شروع شده. شنیده اید که در زمانهای قبل به مردم گفته شده. اما من به شما میگویم. وقتی او این رو میگه و اونو در ابتدای هر کدوم از این شش پاراگراف باب پنج میگه باید اون رو درک کنیم که او با رهبران مذهبی مخالفت میکنه. او به عناوین مختلف میگه کاتبین و فریسیان و معلمین شریعت چیزهای خاصی به شما گفتن. اما بذارید من بگم واقعیت اون چیه؟ تا حد زیادی این مسئله عدم توافق با کاتبین و فریسیان درباره رویکرد آنها به کتاب مقدس بود. این مفهوم کلی این پاراگراف از آیات 17 تا 20 درباره نحوه رویکرد عیسی به کتاب مقدس است. این بسیار مهمه که ما بدونیم چطور به کتاب مقدس نزدیک بشیم. چون اگر رویکرد ما به کتاب مقدس و یا میتونیم بگیم فلسفه ما از کتاب مقدس اونطوری که باید باشه نیست. اون موقع ما هرگز در کلام خدا چیزی رو که خدا میخواد در کلامش پیدا کنیم نخواهیم یافت. خب اینجا در آیات 17 تا 20 شما پاراگرافی دارید که میتونید بهش فلسفه عیسی از کتاب مقدس یا روی کرد عیسی از کتاب مقدس بگید. روی کرد مسیح به کتاب مقدس که بزرگترین تفاوت عیسی با رهبران مذهبی هم بود این بود که او قانون خدا را از منشور محبت خدا عبور میداد و بعد اون رو در زندگی مردم به کار می‌گرفت. بولوز رسول هم همون چیز رو میگفت وقتی این عبارت رو اظهار میکرد که شریعت مکتوب میکشد اما روح شریعت حیات میبخشد. روح شریعت حقیقتا محبته روح شریعت این سؤال رو میپرسه وقتی خدا این آیه خاص رو مینوشت چه چیزی در دل داشت هدف از این قانون خاص یا تعلیم این آیه چی بوده اصلی که شما از این آیه متوجه میشید چیه هر بار که به کتاب مقدس نزدیک میشید باید در پرتو این سوالات باشه و باید از دیدگاه روح کلام به اون نزدیک بشید که همون محبت خدا نسبت به انسان و علاقه خدا به رفاه حال انسان هست تمامی آیات کتاب مقدس با همین هدف نوشته شدن هرگاه که روح کلام رو درک کنید خواهید فهمید که روح کلام چیزی حیات بخش هست پولس رسول میگه اما شریعت مکتوب میکشد زیرا شریعت نوشته شده انسان را به مرگ می کشاند. اما روح خدا حیات می بخشد. این همون چیزیه که ما اینجا در طولانیترین بخش باب پنج و سختترین قسمت از سر سرکوه داریم. عیسی در واقع میگه همونطور که در این پاراگراف آیات 17 تا 20 می بینید، او میگه آنها به شما می گویند، آنها موسا را اینگونه تعلیم می دهند. این روشیه که آنها کتاب مقدس را تعلیم می دن. و گاهی حتی چیزی که آنها تعلیم میدادند کتاب مقدس هم نبود. سنت ها و نظرات خودشون رو تعلیم میدادند اما بذارید من بهتون بگم که واقعیت اون چیه اون دست شما که در بررسی انجیل یوحنا با ما همراه بودید و انجیل یوحنا رو با ما مطالعه کردید یادتونه که تاکید انجیل یوحنا بر این است که عیسی خدا در جسم انسان هست او خودش کسیه که کتاب مقدس رو نوشته کتاب مقدس با الهام خدا نوشته شده خود خدا نویسنده ی کتاب مقدسه بنابراین شما خدای تجسم یافته می می‌بینید که میگه حالا این رهبران مذهبی درک و دیدگاه درستی از کتاب مقدس ندارند. اونها رو فقط به صورت شریعت مکتوب به کار می‌گیرند. اونها کتاب مقدس رو به سوی مردم پرت میکنند. اونها روح شریعت رو فراموش کردند. اصول اساسی شریعت رو و اهداف اون رو کنار گذاشتند. در این بازه زمانی که عیسی به سوی قوم اسرائیل اومد، درست مثل زمانی بود که قوم از اسارت بابل بازگشته بودن فقط چند نفری میتونستن کتاب مقدس رو درک کنن. چون کتاب مقدس به زبان دیگری نوشته شده بود یادتونه که بابلی ها بر اورشلیم حجوم آوردند و اون رو فتح کردند و مردم رو به اسارت به بابل بردن. و این اسارت هفتاد سال به طول کشید پارس ها بر بابل غلبه کردند و بنابراین این مردم اسیر مادها و پارس ها هم بودند در زمان نهمیا و و استر و ملاکی و حجی و زکریا مردم تدریجا از اسارت بازگشتند در طی 70 سالی که مردم در اسارت بودند زبان آرامی یاد گرفته بودند و آرامی زبان رایج اونها شده بود پس از زمان بازگشت از اسارت و بعد در طی تمام 400 سال سکوت فاصله بین عهد قدیم و عهد جدید و تا زمانی که عیسی بر روی زمین اومد تا این قوم رو خدمت کنه اکثریت این مردم به زبان ابری که زبان کتاب مقدس بود صحبت نمی کردند و نمی نوشتند. اکثر مردم باسواد نبودند و کتاب مقدس در معبد یا در کلیسای نگهداری می شد. اونطور که امروزه من و شما کتاب مقدس شخصی برای خودمون داریم تا قبل از اصلاحات مردم کتاب مقدس نداشتند. کتاب مقدس به زبان ابری، یونانی و لاتین بود و مردم عادی قادر نبودند کتاب مقدس بخونند. بنابراین ناچار بودند تعابیر و تفسیرهای رهبران مذهبی از کتاب مقدس همونطور که اونها می بپذیرند این چیزیه که در اون زمان عیسی داشت تعلیم میداد. مردم مجبور بودند به کاتبین باور کنند. باید حرفهای فریسیان رو می چون تنها کسانی می توانستند واقعا کتاب مقدس را بخونن و درک کنند که زبان ابری رو درک می کردند. گروه کوچکی از طبقات ممتاز جامعه می ابری رو درک کنند. بنابراین مردم تحت اختیار کاتبین و فریسیان بودند اگر فریسیان و کاتبین میگفتند این چیزیه که خدا میگه مردم مجبور بودند به حرف اونها اعتماد کنند عیسی این وضعیت رو اصلاح میکنه و با این کار به نوعی اصلاحات و یا انقلابی در این زمینه به وجود میاره حالا بیایید به پاراگراف اول نگاه کنیم اونجا که تفاوت رویکرد خودش به کتاب مقدس رو با روی کرد فریسیان و کاتبین نشون میده با آیه 21 شروع می کنیم اونجا که او میگه گه شنیده که در ایام قدیم به مردم گفته شده قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد اما من به شما می گویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت است و شکایتی داری، هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. حالا برای اینکه دیدگاهی از کاری که عیسی اینجا در این رفتارها در ابتدای این تعلیم انجام میده به دست بیاریم، یادتون باشه که در اونجا گفتیم که عیسی به ما گفت که به درون نگاه کنیم. به درون قلبمون نگاه کنیم اونجایی که رفتارها شکل می گیرند. و ببینیم آیا رفتار درست داریم یا نه؟ ایسا گفت رفتارهای خودتون رو ملاحظه کنید. بسیاری از مردم در سنین پیری نه تنها سختی مفاصل می گیرند، بلکه همینطور سختی رفتار هم می گیرند. رفتارها بسیار مهم هستند. ایسا با تمرکز بر رفتارها در ابتدای این تعالیم به ما می گفت که به درون خود نگاه کنی. اما بعد از اینکه او دادن این رفتارهای زیبا رو تمام کنه به عناوین مختلف به ما میگه حالا اگر به درون نگاه کردید و اگر اون رو دیدید با فیض خدا این رفتارها در شما هست چون خدا اونها رو درون قلب شما می‌ذاره او این رفتارها رو در شما ایجاد می کنه بعد وقتی اون چهار مثال رو به ما داد که می میگفت شما نمک زمین هستید نور جهان هستید شما شهری هستید که بر روی تپه بنا شده و نمیشه اون رو مخفی کرد شما چراغی بر روی چراغ پایه هستید او در واقع داش میگفت حالا به اطراف نگاه کنید و در سرتاسر متا باب پنج، او به ما میگه که به اطراف نگاه کنید به عبارت دیگه او به ما میگه این رفتارهای زیبا را در تمامی روابط زندگیمون به کار بگیریم عیسی شروع میکنه به ما نشون میده که چطور باید به کتاب مقدس نزدیک بشیم و به جای شریعت مکتوب و قانون نوشته شده در کتاب مقدس روح شریعت رو بپذیریم. او تعالیمی رو که قبلا داده، خوشا رو در روابط کاربردی کنه اولین رابطه ای که باید این تعلیم رو در اون به بگیریم، رابطه با برادرمون هست. کتاب مقدس مکررن واژه برادر رو به کار بره و من معتقدم اگر تمام های کلمه برادر رو مطالعه کنید، منظور کتاب مقدس برادر ایمانی هست، نه تنها برادران خونی. نه فقط کسی که ازبی از خانواده شماست و شما با او بزرگ شدید البته به اون طریق هم استفاده میشه اما اساسا برای کسی به کار رفته که در مسیح هست شما با فیض خدا در مسیح هستید و هر کسی دیگری که در مسیح هست برادر شماست پولس رسول با دقت بر حسب درجه ای که با مردم داره به اونها اشاره میکنه از نظر پولس برادر یک برادر ایمانی بود و بعد او از عبارت شریک در رنج یا همدرد استفاده میکنه این برادری هست که با او موافقه و اونها میتونن با هم کار کنند و بعد از واژه همرازم استفاده میکنه همرازم به نظر پولس کسی بود که به همراه پولس زندگی خودش رو به خاطر مسیح به خطر میانداخت اما این عبارات بسیار به دقت در کتاب مقدس به کار رفته در باب اول یوحنا به ما گفته شده که معجزه تولد تازه برای ما پیش میاد تا بتونیم این اقتدار رو داشته باشیم که خودمون رو فرزندان خدا بخونیم. همه ما فقط به خاطر اینکه انسان هستیم، فرزندان خدا محسوب نمیشیم. بنابرای گفته کتاب مقدس، هر کسی فقط به خاطر اینکه هم نجاد با ما و انسان هست، برادر ما محسوب نمیشه. وقتی شما تولد دوباره یافتید و این اقتدار رو پیدا کردید که پسران و دختران خدا خانده بشید، حالا هر کس دیگری که تولد دوباره داره، و حق داره که فرزند خدا خونده بشه برادر یا خواهر شماست این بسیار مهمه که ما با برادرمون رابطه ای شایسته داشته باشیم جمعه ای هست که میگه اگر ما همدیگر رو از دست بدیم نمیتونیم دنیا رو برای عیسی به دست بیاریم یک بار کتابی در یک کنفرانس دیدم که به نوعی کلک زده بود عنوان کتاب بر روی جلد این بود بزرگترین مشکل خادمین و وقتی کتاب رو باز میکردی در درونش در صفحه اول نوشته شده بود، خادمین دیگر هستن. قالب اوقات مشکل خادمین هستند. اون مربوط به رابطه اونها با برادران خادمشون هست که شاید هم اونها و یا رزم اونها هستند. اینجا ایسا واقعا تعلیم حیرت انگیزی به ما میده. چیزی که او میگه وقتی شروع میکنه این تعلیم معوضع سرکوه رو کاربردی کنه، اون جایایی که کاربرد چیزی رو میده که در اولین قسمت، باب پنج تعلیم داده اینه که تفاوت زیادی بین نحوه روی کرد من به کتاب مقدس با نحوه رویکرد رهبران مذهبی به کتاب مقدس وجود داره. اولین مثال او این هست. چیزی که کاتبین و فریسیان در رابطه با برادر و روابط ما با برادرمون تعلیم داده بودن این بود. قتل نکنید. چون اگر قتل بکنید در معرض خطر داوری قرار خواهید گرفت. کلمه داوری که اونها به کار می به معنی داوری ابدی نبود. معنیش این بود که اگر برادر خودتون رو بکشید، به زندان میفتید. اگر برادرتون رو بکشید، بقیه عمرتان را در زندان خواهید گذران. و با همون ترجمه تحت اللفظی به این فرمان بزرگ از ده فرمان می‌پرداختند. به نظر میرسید که اونها میگفتن، مادامی که برادرتون رو نکشتید، پس رابطه شما با برادرتون درسته. و اما عیسی میگه گوش کنید بذارید من به شما بگم روح این قانون چی هست روح این قانون اینه که رابطه شما با برادرتون اهمیتی حیاتی داره و به چه دلیل هست که مردم عملا یکدیگر رو به قتل میرسونن به خاطر چیزی هست که در قلب اونهاست وقتی اونها در قلبشون چیزهایی مثل خشم داشته باشن یا اگر به برادرشان راقا یا احمق بگویند حالا این اصطلاحی بود که اون روزها مردم به کار میبردن مثل اینکه امروزه به هم دیگه ابله میگم. به هر کلمه ای فکر کنید که در زبان و فرهنگ شما باعث تغییر کسی میشه این کلمه راقا و احمق در واقع همون کلمات توهین آمیز هستند به عبارت دیگه او میگه اگر شما در قلبتون نسبت به برادرتون خشم داشته باشید رابطه شما با برادرتون درست نیست و اگر دیدید که از برادرتون بدگویی میکنید و او را کوچک میکنید و کلمات تحقیرآمیز به اون نسبت میدید رابطتون با برادرتون درست نیست. اینجا او تعلیم حیرت انگیزی میده و میگه حالا گوش کنید. اگر شما برای دعا میرید به محض اینکه میخواهید مشغول دعا بشید، اگر متوجه بشید که رابطه شما با برادرتون درست نیست، او میگه اول باید برگردید و با برادرتون آشتی کنید. بعد بیایید قربانی خودتون را تقدیم کنید یا دعا کنید. حالا این یا به خاطر اینه که برادرتون کاری بر علیه شما کرده و در بعضی از قسمت های اناجیل گفته شده که شما کاری بر علیه برادرتون انجام دادید. اما مسئله اینه که اگر رابطه شما با برادرتون درست نیست، مجبورید اول بریداشتی کنید. در سراسر کتاب مقدس بارها و بارها تعالیم به دو کلمه منتهی میشه و اون دو کلمه عبارتند از اول خدا. بارها و بارها کتاب مقدس به این اشاره میکنه که اول خدا. این آسون نیست اما پیچیده هم نیست. ما اون رو پیچیده می‌کنیم چون نمی خواهیم او رو اول قرار بدیم اما واقعا بارها و بارها شما این تعالیم رو دیدید مثلا در متا 633 میگه شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید اون وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد و به این ترتیب باب 6 به پایان میرسه بارها و بارها کتاب مقدس به ما میگه اول خدا اگر خدا اصلا وجود داره پس او مطلقاً وجود داره و خدا مطلقاً مهمترین در زندگی ما هست. پس خدا باید اول باشه. اما اینجا جاییه که میگه اول برادرت. و من فکر میکنم که این هیرت اول برو با برادرت هاشتی کن. بعد بیا و خدا رو عبادت کن. این تعلیم هیرت اما چیزی که او میگه اینه رابطه شما با خدا و رابطه شما با برادرتون به همدیگه وابسته هستن. یوحنا در کلام خودش میگه اگر مردی میگوید که خدا را دوست دارد و برادر خودش را دوست ندارد او در اول یوحنا باب چهار میگه اون شخص یک دروغگو هست اگر کسی میگوید خدا را دوست دارد و از برادرش نفرت دارد او یک دروغگو است. دلیلش اینه که این دو رابطه که عمودی و افقی هستن به همدیگه وابستن به این دلیلی که تعلیم داده شده در سر میز اشاع ربانی اول باید نزد خدا اعتراف بکنیم و بعد رابطه خودمون رو با برادرمون اصلاح کنیم. و بعد از اون میتونیم به میز اشان نزدیک بشیم. اگر ما همدیگر رو از دست بدیم، نمیتونیم دنیا رو برای مسیح به دست بیاریم. بنابراین وقتی عیسی تعالیم معایزه سراکوه رو کاربردی میکنه و در عین حال روی کردش رو به کتاب مقدس نشون میده، او میگه گوش کنید. روح فرمان این نیست که برادرتون رو نکشید. روح این فرمان این هست که با برادرتون در صلح و آشتی باشید. اطمینان حاصل کنید که رابطه شما با برادرتون اونطور که باید باشه هست. پس اگر فهمیدید که نسبت به برادرتون خشم دارید و یا حتی افکار تحقیرآمیز نسبت به او دارید تا وقتی که رابطتون رو با برادرتون اصلاح نکردید حتی دعا هم نکنید. اول برید و با برادرتون آشتی کنید، بعد از اون بیایید و دعا کنید. دوستان معلم ما به دادن پیغام و به چالش کشیدن ما ادامه میده، تا اینکه در تعهدمون به عنوان پیرو عیسی مسیح رشد کنیم و تعالیم خداوندمون رو در زندگی روزمره به کار بگیریم. امیدواریم ضمن ادامه تعالیم خداوندمون در مویزه بالای کون به شما دلگرمی و شادی بده و شما ببینید که خداوندمون در شما و توسط شما کار میکنه تا کلامش رو در زندگی شما به کار بگیره. وقت امروز ما به پایان رسیده اما امیدوارم ترتیبی بدین که در جلسه آینده در ادامه این درس‌های بسیار ارزشمند در دانشگاهه کوچکه کتاب مقدس با ما همراه باشین